فصل 4 بخش اول سر شام یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم سکینه پشت صندلی ایستاده بود و به دستور خانومش ظرفهای غذا را این طرف آن طرف می‌برد فرنگیس میزی سفید دوخته بود و بیشته ها لغمه های کوچک بدهام میگذاشت معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود من همش به او مینگریستم. زن بدبختی در برابر من نشسته بود زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بی خودی دنبال آن از کینه ای که اول شب از او در دل داشتم کوچکترین اثری باقی نمانده بود. حتی یک بار این فکر به سرم زد که شاید استاد موجب ذلت کنونی او بوده است. انسان توفاله اجتماعی بود که در آن نشوا نما میکرد. کوشیدم به چشمان او نگاه کنم. موج‌های بلندش مانه بود. وقتی سرش را می میکرد و من میتوانستم این چشمهای بادامی حالت دار را تماشا کنم، دیگر اثری از تباهی در آن نمیدیدم. آن وقت از خودم میپرسیدم که چرا استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگی شرافتمند برو باید. قبل از آنکه بقیه داستانش را نقر کند، دل من بیشتر به حال او میسوخت تا به حال استاد. بالاخره موجود زندهی مقابل من نشسته بود. آیا میشد به او کمکی کرد؟ تدریجاً احساس کردم که باید دربارش قضاوت کنم. زن پاکی بود. شاید همین نکته مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود میکرد با کمال شجاعت جنبه های خود را بیش از حد لازم تشریح میکرد آیا همین دلیل صفای باتن او نبود؟ این زن نمیتوانست کار باشد. منطقه بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بودند. مانند پرکاهی در گردباد به اوج می رفت و سقوط می کرد. این زنداش حوادث زندگیش را بی ریا حکایت می کرد. همه زنهای دیگر هم طبقه اون ازیر از این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی می و هیچ وقت وجدانشان در عذاب نیست. اما این یکی میخواست با مرور اتفاقات نیکوبد بد گذشته ای را که از زیر تارهای روح او را می نابود کند. تا آن فراغتی که آرزو میکرد. برای یک لحظه هم شده نصیب شود. آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه میکند از کجا معلوم است که استاد این زن را حوسران دمدمی معرفی کرده من سالهاست که این پرده را میبینم و هیچ‌وقت این تصور به من دست نداد که خوی زشت در آن تجسم یافته بارها به خودم گفتم که این چشما گیراست است و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه نوع احساسی را بیان کرده ساعت ها نشسته بودم و چشما را تماشا میکردم گاهی به خودم می گفتم که از این چشما باید در لحظه بعد اشک جاری شود. اشک تحصر. اشک عجز. بار دیگر تصور میکردم کردم که این چشم های زن آشقی را جدوه میسازد. زنی که جرأت نمی کند عشق خود را به زبان بیاورد. زنی که عظمت امت او را له و لورده کرده. و باز هم می کوبد و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد. گاهی برعکس میگفتم نه؟ صاحب چشما دارد مردی را به دام می اندازد. خود را در لحظه بعد خواهد رو بود و این زن با نیشخندی که از چشمایش ترافاش می از حال زار قربانیش کیف حیوانی میبرد. من نفهمیده بودم که چشما از آن یک زن دلباخته عفیفی است یا زن هوسباز باز هر وقتی کارد و چنگال را کنار گذاشتم و مانند او به صفری سفید و باشخابهای لبتلای نگاه میکردم، متوجه شدم که اصلا تصویر های پرده نقاشی دیگر در خاطرم نیست و میل شدیدی به من دست داد که تصویر را از نو تماشا کنم. از سر سفره بلند شدم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم، به اتاقی که قبلا در آن نشسته بودیم برگشتم. با شتاب لفاف را باز کردم و تابلو را جلوی میز گذاشتم و نشستم و به آن خیره نگاه کردم. در آن چشم ها چیز تازه‌ای که تا آن وقت ادراک نکرده بودم نیافتم. اما به نظرم شیطنت عجیبی استاد در این تصویر به خرج داده بود دلم به حال زن ناشناس سوخت تابلو را در محلی گذاشتم که خودم بتوانم دائما به آن نگاه کنم و زن ناشناس برای تماشای آن مجبور شود رویش را رو برگرداند چند دقیقه بیشتر طول نکشید در باز شد و زن به اتاق آمد همین که چشمش به پرده افتاد تعجب کرد بوی خشکش زد اما این شگفتی لحظه‌ای بیش طول نکشید حتی قدمش همسوس نشد در را بحث و یک راست رفت و سر جای خودش نشست چیزی نگفت هیچ به روی خودش نیاورد که تابلو را بدون اجازه او از محفظش درآوردم من به تابلو مینگریستم و زن ناشناس به من نگاه میکرد شاید میخواست بفهمد که من حالا پس از اینکه نیمی از زندگی او با استاد را میدانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد چند دقیقه سکوت برقرار بود آخر من شروع کردم و پرسیدم. آمدید به تهران و رفتید و استاد را پیدا کردید. جوابی نداد. از جعبه خاتمی که روی میز بود، سیگاری درآورد. آن را سر چوب سیگاری بلندی که در همان جعبه بود زد. که کشید و دود را از لب‌های لطیفش به هوا فرستاد. و گفت، نه به این آسانی که شما تصورش را می‌کنید. اسم من فرنگیس نیست، فرنگیز اسم مستعاری است که خدا داد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند قرار شد در نامه‌ای که به او می نویسد مرا به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی مرا نشناسد برای نامه نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه دهم خورداد من دم در سینما منتظرش باشم به او نوشته بودم که لباس سفید بر خواهم داشت و یک کیف سرخ رنگ در دستم خواهد بود بنا بود که سر ساعت هفت همین که او را دیدم دو بلیت بخرم و دو بلیط را در دست راستم نگه دارم دا بی این اینکه به او چیزی بگویم وارد سینما شوم و او هم دنبال من بیاید و در تاریکی با هم گفته گو کنیم. عیناً این منظر یادم هست منطقه این را خداداد فراموش کرده بود که در خرداد ماه سینما ها در هوای آزاد دیرتر شروع می شود و اتفاقا آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدحام کرده بود و من نتوانستم دستورهای او را عینا انجام دهم چند دقیقه پس از ساعت هفت هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آنکه ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم به دین طریق من پس از برگشت از اروپا با او اروپ روبرو شدم اما چقدر گفتنش آسان است ببینید وضع مرا در نظر بیاورید آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه حیجان و با چه توقعاتی من خود را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم در آن ایام زنی بودم فهمیده. پنج سال زندگی بیبند بار در اروپا را پاشت سر داشتم. بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدمهای عجیب و قریب روبرو شده بودم. همه طالب من بودم. اما در این حال زنی بودم تنها و یگانه همه شهر تهران مرا و خانواده مرا می شناختند. اما من میان آنها خود را غریب و بیکس احساس می کردم. با آنها نمی توانستم آخت بشوم. آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری میآورد می آورد. هیچ گونه رابطه میان من و مردم نبود و کسانی که آن روز مردم نامیده میشدند یعنی آنهایی که حرفشان درو داشت اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر با هنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من آور بود و این پدر بیچاره که آنقدر مرا دوست داشتن نظر من از هر بیگانه ای بیگانه بود شبها که میتوانستیم دو سه ساعت با هم بنشینیم و صحبت کنیم، تمام وقتش صرف آماده کردن سینی مشروب و میشد. مدت مدتها سر کباب سیخی یا دنبالانی که خوب سرخ نشده و آبدار بود، جدال میکرد و وقتی چنگیلا سر میکشید دیگر مست بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرام را درآوردن، کاری دیگر ازش ساخته نبود. به علاوه، همش میخواست درباره خاستگارهایی که در خانه ما را از پاشنه برداشته بودند، گفتگو بو کند. مادرم اصلا یادش رفته بود که من پنج سال تمام در پاریس آزاد بودم و بازم خیال میکرد که من دختر 17 سالی ساله چشم گوش بستی هستم و موی دماغ من میشد که فلان ساعت کجا رفتم که را دیدم به فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمد و کارت گذاشته بود کیست به فلان نامه از کجا رسیده و فلان شب کجا دعوت دارم و من نمیخواستم این دو نفر مهربان را که انقدر به من علاقه داشتن از خود برنجانم این رو هم در نظر بگیرید که من چه شوری منتظره این نخواستی ملاقات بودم. من عزیزترین چیزی را که در زندگی داشتم صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم. برای اینکه خداداد با کنایه و اشاره به من تلقین کرده بود که من حلقه بسیار مهم و محکمی در نهضت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت میگرفت می توانستم بشم. و در من این فکر پرورش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد در موقع مخصوصی در فرصت‌های غیرعادی ممکن است منشأ اثر بسیار عظیمی گردد و چه بسا ممکن است که سرنوشت مملکتی در یک آن به خصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی حتی فداکاری هم نه بسته به جسارت و دلیری موجود نهیفی باشد که به منزله پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشکار کرده باشد من خود را یک چنین وسیله‌ای میدانستم، و عواقب پرارزشی از این گذشتی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم به خود میگفتم بالاخره جنبشی زده استبداد در ایران دارد جان می گیرد و مرکز این ناحزت آنطوری که خدا داد به من فهمانده بود در غررووپاست و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود و آن کسی که در ایران دارد ناحت را اداره می کند ماکان است و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کردم من باید دستورها را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همهکاری این مقاومت خواهم بود و هم وقت ماکان هم باید تحت نفوذ و ارادهی من باشد. <تصفيق> چه خوابهای مخوف و شیرینی. ملتفت می شوید؟ من علاقی به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم. دردهای آنها دل مرا نمی سوزند. در زجر رو مصیبت آنها شریک نبودم. هر اتفاقی می افتاد جای من اهم بود. چه ارتباطی ما بین من و این کور و کچل ها که این مملکت را پر کرده بودم وجود داشت؟ تازه رجالش چه بودند؟ چرا به فکر آنها باشم؟ اگر رو به خطر می رفتم باز هم در فکر خودم بودم. اینها به جای خود سهی، اما باز هم نکته ای هست که باید بگویم. شاید شما قبول کنید، ولی او هرگز قبول نکرد. اگر قبول کرده بود، چون این تصویری از من نمی ساخت.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 عالم دیگری به روی من گشوده شده بود جاه طلبی مرا برانگیخته بودند من میخواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در هسته آن غرضی شخصی نهفته بود با خوشبختی رو بروشم. آن کینهی که از این مرد در دل گرفته بودم فراموشم شده بود از همان روز دوم ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم تا اینکه فهمیدم که هر روز به همین مدرسه‌ای که شما الان نازم آن هستید میرود و اصرها ساعت پنج و شش از آنجا خارج می شود. روز پنجم خورداد بالاخره از روی نشانی که از او گرفته بودم و به کمک حافظم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلو او در خیابان قدم زدم و میخواستم با چشمهای هنرمند که هنوز در من نمرده بود او را ورانداز کنم و خواست سیمایش را به ذهن بسپارم آن روز به چشم زن زنی که طالب و تشنه از به او نگاه نمیکردم اما نمیدانم چرا دلم میتأپید میخواستم این مرد دلیل را که جان به کف مبارزه میکرد و ته دلش به تمام دستگاه پرزرق و برق استبداد میخندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز دهم خورداد خرداد با او برخورد کنم که مورد احترامش باشم. با چنین شور و با چنین حیجان و با چنین توقعات و با چنین امیدی چند دقیقه پس از ساعت هفت روز دهم خرداد سال 1314 با او مواجه شدم. اما حالا باید به شما بگویم که یک نگاه به صورت او و مبادله چند کلمه تمام این حالت مرا دگرگون کرد. و من باز مانند سابق زنی شدم که احساس کرد با مردی از خود بزرگتر از خود استخاندار تر روبرو شده است. میدانید اگر استاد هم مردان دیگر به من دل میباخت شاید برقه هوسی ما را به هم متصل می کرد و به همان تندی خاموش می شد. و خاطره استاد هم مانند خاطرات دیگران در فراموش دلم پنهان می شد. احساس محو و گسستهی درون مرا منقلب کرد و به نظرم آمد که با مردی روبرو هستم که احتیاج به من دارد محتاج روح و تن من است نه به مردی برخورد کردم که میپرستیدمش و میخواستم خوشبختش کنم و در آغوشش آن خوشبختی را که آرزو میکشید دریابم بسیاری از مطالبی که تا به حال به شما گفتم با هم و با آنچه حالا می گویم و بعد خواهم گفت پار از تناغذ است. گاهی آنچه یک بار می گویم با آنچه بعد اضافه میکنم کنم ناجور است. و شما هر ای که می بگیرید. اما بالاخره من همین هستم که شما دارید میبینید من دارم خودم را بدون هیچ گونه شیل ای به شما نشان می دم. در گفته های من تناغذ نیست. در وجود من در هستی من تناغذ است. می دانید زندگی مرا به چه به چشمه آب زلالی که در گوشی از کوهستان از زمین میجوشد. آب صاف و خونکیست. این آب هستی بخش و روح است. این آب از کوهستان که سرازیر میشود قرآن و خروشان است. از تخت سنگ ها میجهد. بوته ها را از جا میکند. شنریزه ها را با خود میغلداند. وقتی به جلگ رسید آرام و مصفه است. چمن ها را میاراید. و گلها را تراوت می‌بخشد و برکت همراه دارد. همین آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوزهای متعفن باقی ماند، گنداب می شود. اگر به شور زار رفت به اونق زمین نشست می کند. و روی زمین دیگر اثری از آن نیست. اما باز به قرر زمین که نشست، صاف و زلال می شود. این از زندگی من. همان آب صاف و روح افساس که به این شکل‌های ناجور در دیگر از چه داریم صحبت می‌کنیم؟ برخلاف تمام آنچه که تصور میکردم که صورت ظاهر او در من نمیتواند تأثیری داشته باشد، پیشانی بلند و چشمهایی درشت و نافذ او، لباس آراسته و حرکات موزون و با وغارش. طرز بیان شمرده و فشار دست سنگینش، اینها همه یک جا مرا مشتعل میکرد و از وجود و شخصیت ساختگی من جز خاکستری بیش نماند. من چنان خود را ناچیز و ناتوان احساس کردم که تصورش برای من غیر مقدور بود. این یک احساس تازهی بود و ابداً با آنچه که تا سرم آمده بود شباهت نداشت. من ادراک میکردم که از یک کلمه حرف او سرخ میشوم و دیگر آن جسارت و پر روی در من وجود نداشت. خجالت میکشیدم. عیناً مانند دورانی که پانزده ساله بودم. از تماس با او تشن ناجی به من دست میداد. من برای خداداد احترام قائل بودم. از او حرف شنوی داشتم. او مرا مرعوب کرده بود. اما آنجا دیگر زن زیبایی که در وجود من نه بود تقاضا و تبقیه نداشت. اینجا زن طالب، زن عاشق، زنی که یک بار از مردی توهین و تخخیر چشیده بود، قد علم کرد و من احساس کردم که دیگر اختیاری از خود ندارم. وقتی سینما تاریک شد از من پرسید، اسم شما چیست؟ گفتم فرنگیست. همین که صدای مرا شنید با چشمهای دراشتش که در تاریکی مانند چشمهای گربه سیاه می به من نگاه کرد و من مانند دختر بیچاری که در دست مردی مقتدر اسیر شده، برگشتم به اون نگاهی که پر از عجز و لابه، پر از التماس و التجا بود انداختم. گفت: مثل اینکه شما را جایی دیدم. گفتم من شما را هیچ ندیدم. گفت: صدایتان شما به گوشم آشنا می آید. گفتم خیال می کنید. چرا دروغ گفتم؟ برای اینکه می‌خواستم پیوندی که زندگی مرا در گذشته به حیات ها هستی و هستی او بسته بود قطع شود. نمی‌خواستم بفهمد که من همان دختر سرسری و دمدمی و پر روی کارگاه نقاشی در خیابان لالهزار هستم. می‌خواستم که برای شخصیت من ارزش قائل شود. فیلم تازهی به تهران آمده بود. جمعیت زیادی آن شب برای تماشا هجوم آورده بود. در راهروهای حیات سینما نیمکت گذاشته بودند و چیان را روی جا می دادند. در راهروهای حیات سینما نیمکت گذاشته بودن و تماشاگران را رو روی آن جا روی یک نیمکت جای یک نفر بیشتر خالی نبود اما من خود را جمع جور کردم و به او هم جایی دادم برای اینکه از روی نیمکت نیفتد دستش را به تکیهای پشت نیمکت گذاشته بود من کمی به نفر پهلوی خود فشار آوردم و به استاد گفتم نزدیکتر بیایید تا به توانی درست بنشینید اما او خودش را به من نچسباند و من دلم میخواست که گرمای تن او را احساس کنم دلم میخواست دستش را محکم بگیرم و روی سینم فشار دهم تا تپش دل مرا حیجان رابی که به من دست داده بود به او بنمایانم میخواستم خودم را کوچک و نهیف نشان بدهم تا دلش به حال من بسوزد